من منات شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سيدنا رسول الله و الطيبين طیبین الطاهرین المعصومین الناجدا دائما ظاهر دائما مشعین اللهم اغفر لنا جميع المشاهدین وارحمنا برحمتك یا ارحم الرحیم بحثی که بود به مناسبت ورده بحث حد صاحب شدین روایاتش رو خوندیم و شده شد که اجمال قصه در اهل خود صحابه مسئله قتل صاحب مفرح شده در زمان فیلم مرکن این مسئله مفرح نشده ایلا همون که اهل سنن در به قصه که اون هم روشن نشد و از به سی بوده به یه نفر نسبت داده که در کوفه در زمان عثمان یه صاحب روزر کشت و او نعب کرد که این نید سمیت رسول الله یه بود همون جندوب که من شنیدم واسه بهمم خود جندوب هم حالا هی این که سنده اون رو بارد نیست محل کلامش اصلا از رک رسول الله یا نه محل کلام شده که در کتاب های دیگه اون حسن رسول الله یک جندوب هست دیشون گفت این سمیت رسولاش درست نیست کلام خودشه دیشون گفت کلام حسنه الان یه حالت بگر از این مطلبی که خیلی مردد و مشکوکه بله در نیان اهل احل سنت مسادر ما فران نیامده که عمر قائل بوده و دستور هم داده این حکم حکومتی که یک منطقه‌ای که اونجا صاحرها رو بکشین یا زنهای صاحره مردس و داره که سن افردن صاحره بکشین این رو خمبین و متعرض شدین لیکن راجه به عمر حالا هر مقدار که هست لپس اون چهار تا پنج داره باید از اجرایی داره که راجه به امیر خیلی زیاده خیلی یه چیزه واقعا حالات غیر طبیعی آدم احساس میکنه زیاد اون مخ... معلوم میشه در اون که که منشوب بوده غیر از حالا این که امیر المعنی نصبت داره توی طبعی نمیشه که خود پیغمبر پاهمده. ما غیر از این کتاب و غیر این نقل از امیر و ممنونی اصلا در مسادر احرس برند نداریم که صاحب رو مسلمی یکتر این اصلا نداریم کلیم در این هم داریم و این مقدار از کتاب توسط عمه ما به خود امام نسبت داده از مثلا از امام صادق سکونی از امام صادق با سند از امیر و یه طبیان داشتون گذاشت خیلی تکرارش مفید فائده نیست و از قدیم امدش هم بین از خواب ما بین زیدی ها اون کتاب مصند زید بود که حد رو حد فرکتی اونها داشتن یه نسخه ای بود که پیمنبر رضا شهد علیه رضو هرلان فقط چی احل زمه چیتا هست احل زمه این هم داشتن این ما نداریم خود ما بین این عنوان از امیر المومنی سامان و رسولاد نداره با زیاده مجموعه یه اموری که در اینجا از امیر در در صحر شده اینه یکیش همین مسئله قتلشه یکیش مسئله ای که صحر کفره اینم که این هم مجموعه آمده این توی مجموعه این مجموعه نرشد یکی اینکه که تمسط شده بایه با ساروت و ماروت و ما یا علمان منح و اوللا ما مناطخلا تک این هم عرض کردیم تا اوجای که ما آن شرراغ داریم در روایات ما نیامده اما در کتاب اعیلی ها در آئم و, و از کتاب غذایا و شمل احکام نخر کردیم ثرین مجموعه نغلی که ما از معامین سروت الله سر معلی داریم گفت به ترتیب قد اینه یکی همون کتاب را هم از و احکام شواندش پراغاره یکی کتاب مصند درهی به پیچه چشمامی ها برسه یکی دوستوزن نقل از امام صادقه که سرکونی و اون اصحاب نعمار و قیاس کلوب ده. یک نقلم از نقل های عمری عمر نهری که این هم نقلی کرده بیر برزید مسادران این مجیمونه نقل های که از رو ممنونی شده هم تمسک با آیه شده هم اثبات کفر شده و هم این حکر رو ذهر کرد البته در مسادر اصحاب ما آرهبا اون کتاب در داری و سنن نیواندن از کردن کتاب رو داری و سنن از زمان امام سادر بین اصحابا محلوم شده بسید اینجا نیستالی وقتی اگر خواسته بود بلکه در اختیار ساردائم بوده و نکری اصلی را ما که همین کتاب اصلی اصل مطلب و اون مقداری رو که اصحاب ما از سرکونی نقل کردن اون مقدار توش استدلال با آیه نیست کفرم نیست خونه فرد دقدر می یعنی به باز دیگر اون مقداری که در کتاب سرکونی بوده بازم تمام قضایه و سنن نیست بیشتر همون حکمشی یقتر کفرم اون مقدمات نیست اما با قطع نظر از تطویق آیه که باز هم روایت ضعیفه داریم که در ضعیق آیه مثل تحصیل ما هم و دیگر هم در روایات صحیحه هم از سکه به این آیه که برای اثبات کفر صاحب هم نداریم تو که تا با قضایت داریم اما روایت صحیح صالمی که اثبات کو. و در روایات عامه به طور کلی راجب به سه همون عبارت معروف رو دارن که ابو هرره از پیرنبر اشتن بو از سب الموبغام به عنوان کبائر از شرف و سه از شرف و سه به عنوان کبائر نکفر شما سر اینکه که اصحاب ما هم این تیکیه اتفاق رو هست کفر رو دیدن این به کفر نمیخوره ازبطه روایت ابو هرره تو بعضی مسادر ما آمده مسادر بعدی خوندیم با قاعده نظر از روایت ابوهریره که تعبیر به به خاطر کبیره شده یه روایت دیگه‌ای از عبدالعظیم حسنی که سنهش بر اساس بعدی تازه بعضی و سوابق مطرح کردیم در اونجا هم سهر اومده ما چند تا روایت داریم که اینم اشاره کردید یا جای وقتش اینجا نیست در باب عدد قبائر یا در باب نام بردن کبائر. حدیث صحیح می داریم گیدم اون نیست در حدیث صحیح چیز نیست به حساس وارد نشده اما انس در حدیث صحیح اهل سنن که ابو حریره رسول الله که در کتاب بخاری و بخاری چند بار رو کرده تختی هم کرده در صحیح اهل سنن آمده که صحیح رو شرک دو موبغاته یعنی کباهه پس این بحث مفرش شد خوب روشن شد یکی <تصفح> این کار یا سه کفره یه گذر کباهه روشن درد اگر خواست این شد حکم مرتب داره یا حکم زندی قضا داره توبه داده بشه یا توبه داده تمام اینا سرکرده در روایات ها تردیر و معمونی منعکس دشه. مثلا در این مجموعه ای که ما از روایات امامیه امین ویروس خونگی تحریر جامع کردین نداره که سر دوز کبائر منسوب که سر دوز کفر و تمسک هم به آیه و در این روایاتی که منسوب است امام جواد یا امام هادی هر چیزی فنی حضرت عبدالعزیه حسنی حضرت امام شیخ دوز کبائر تمسک میکنن به دلیل همین آیه حالا اون روایاتی که به اهل مؤمن منسوب است کناسیقه صدره آیه است و تبع او ما در شیراز این امام علی سلیمان در ماکبر سلیمان راتن شیراز این تفرو شده در روایت ما نه روایت اهل سنت در روایت ما اون روایتی که با عنوان کبائر نام برده شده تمسوق شده به این آیه و لقد علموا لمن ما لهو فی الاخره من کلا این آیه در این کتاب قضایی و سلم و احکام صدر آیه همین رومانی تنساگه که سه کفره لیکن خود همین آیه به خطیق کنیم زیدش به امام جواد دست بداییم که سه جزه کباهره نه جزه سه در روایات دیگر کباهر ما نیست من خب مجموعه روایاتی که ما الان در اشتگاه ما هم که اصطنی چرشیه یک بذ یه بحث دیگه‌ای پولی که خب می‌دونید ببین مثلا خانواده دنبال شهروند باشه پولی که افراد برای این سهر کردن محبت و محبت به این افراد میداد برای اینکه شهرکدا معابت اجازه رو به حدس خونین میره به اصطلاح تأخیر تأخیر یعنی اخذه به اصطلاح مثلا شوهرتون بود زدی اداره بدون اجازه اونطوری چیزی این ولی که اون یکی تحریزه که تحریزه این روایات داره اینم داره به واسه تخریزه دارین فرض که وقتی یک بحث هم پولی بوده که به ساخر می دقت دقصد این هم ما یه بابی داریم که از کارم جامال احاد گاله روزن 22 کار خوبی کردن سال و سال این کار نکرده. یه بابی قرار دارده باب ما قرار انواع سرد در خود جامال احادیست کار خوبیه ساخن شد متفرره عجیب اینه که ما در باب سرد چند تا افه داریم اصلا رواسته مورد مرگان رووارد سکونی داره بود که توی یه تاریخ تاریق هست چون مثلا رووارد سکونی هم مکن هاش مختلف میشه توی بعضی از این رواز رو با اوجات و صاح توییه آ که صمته ضعی به تو جهتریات اینم هم منصوب برمی معامینه وجود کاره و سااح اون روواردی در جهطرات که خیلی طولانی اودو از پنج که خیلی صلحهایی زیادی رو نسبت داده برمی و اونم اون جای دیگه نداره پس یه مشکل بین مجموعه یه بحث چرا به صحق میشه اگه هم پولیسی به صحق داده میشه در مقابل صحق توی ادهی از روایات ما در باب صحقه نیامده تو برزش آمده توی همه روایات ما این حجرت و صاحب نیامد به عنوان صحق رو اگر واهم بنابرای چه بشه با همون کبیره بودن بیشتر میسازه پس بنابراین این این مجموعه‌ای بود که از آیات در یک روایت واحده بود یه خیلی برایش برش باز نکنیم یه روایت واحده داریم که منصوب از به امام ساده از کتاب احتجاد انواع سهر رو نوشته قبل از این نداریم ما بعد از این هم نداریم چون سر سهر اخسام داره سر اصحاب کواکر سر پولا یکی از نمیمه مثلا این که یک نواح نیست یک حقیقت واحده نیست و اخسام داره این مجموعهی ای که داریم تا اینجایی که من دیدم مجموعه روایات ما کلن در باقصه و همین تخصیم بندی در باقصه خب یه مرده در زوایات ما که ضعیفه، سر قصه هاروت و ماروت و اینها یه مقداری هم راجی به قصه سهره از که از اون راجی به اون مرده راجی به اون داریم که باقصه از ایش ارزیابی اینجوری نشده ارز کردیم بحثایی هم که بعد مختلف شد که آیا سر حقیقت داره یا حیقت نداره از که مرمون مثل برمون استاد شیخ توسی و ادوی از روزوگان قبل بر, بر معتقدم سر حقیقت نداره تمثل بشن بیشتر در دنیای اسلام با آیه اصف خیلی علیه همین سهر انها تسا که سابران هم اشاره که اخیلان در این کتاب البحر و زخاه هست مال زیبیه فق به چی؟ امکنی رموز دیگه رموزش میشه اونجا نسبت داده به اکثرال اطره اینواله نرده هاش تا چهردی درسته به عنوان اکثرال اطره نسبت داده که قال اکثرال اطره از صرف فکر نمیکنم ثابت باشه و ارحال اونجا ایشون به اطرق احتمالا شبه منادازی ده دارمون علمای زیدی باشن امه زیدیی که در یمن بودن احتمال باشه. به در روایات ما این بحث رو من نیدن به این عنوان که سهله و حیاتون املا امیتونه یو خیل و اله هم سهره هم انها تستا این به این معناه است که اون امر واقعی بوده لیکن خیال می کنن ماره خیالشون ماله مار بودنشون بوده و اولا این که تنها با بودن جیوه در و حرکت امر واقعی است این راجع به مجموعه روایات از برکه روایت معروفی هم هست آسان و را از کلونه جنه که یکیش هم به اصطلاح مدمن سهر یکیش توی نسخ مدمن سهر توی نسخ اهلسانه مؤمنه به سهر توی نسخشون هم مصدقه به سهر این کلمه مدمن چند جور زرد شده مدمن مؤمن مصدق که این هم عرض کرد ما یه اطلاقاتی که مهمترین اطلاقاتش همین در فره ما در حدیث ما یعنی اطلاحاتی دیگه میشه قبولی کرده خیلی معروفه در حدیث احل سنت که صحر با شرک مدرونان و صحر دو زبه در روایات ما هم توی بعضی از روایات کبائه صدق آمد بقیه یه روایات قابل خدشه هم سندن مطمئن گیرهایی داره تقریبا اینکه میشه با که میستنش معتبر سره همینی که قبائه قرار داده شده. اینم ما داریم روایت کفرم داریم اما با شواهدی که به حاضر جالی هست روایت کبیره روشندتره البته اصلا خیلی از روایت کبیران هم نه آمده توی یک تاریخ از روایت کبایر آمده که روایت مرهوم عبدالعظیم حسنی رضوانوی هستاله از امام جوازه و از سندشان برای از سندشان برای از سندشان مشکل خاصی نظر الان که به مکان این راجع به مجموعه یه و اما نسبت به خلاصه جمع بین این مطالب ما توضیحاً ارز کردیم. انطاقاً انسان وقتی به شراحل تاریخی نگاه میکنه و هم به شراحل اجتماعی زمان خودمون زمان خودمون هم گفت استثابه از نهرم میتونی اینجای خیلی عرض عریضی در ذهن مردم داره سه مردم عوام سه رو ممکنه بعضی از قبیل تلسمات باشه بعضی از قبیل مسائل علمی باشه حالا فرض که مثلا همین تلویزیون رو زمان سابق در زمان مثلا 20 سال قبل 500 سال قبل میبیند خیلی خیلی سهر کرده که از این رو دور دارنشون بیدنه. یا صدایی که در کناز جاست دارنشون بینید و این ارزش خیلی عریضیگاه انصابش این طوبیه و متأرف ماها به طور طبیعی اینطوره. بش هر یه چیزی می‌بینه که غیر طبیعیه، غالبا خودش میبازه. میشه این که بیاد تحقیق بکنه، چی بوده اصلش، چی بوده فرشته بوده. زیر واقعی بوده، ریش ها بوده. آیا واقعا رابطه الی و بندوزی برقرار هست واقعیه یا نه؟ من به نظرم میاد که در نخله سر اینطوری شده. اینی که نسبت دادن به ایده که واقعیت نداره، مثلا به نظرشون عجیب آمده فرسون مثلا یه بقیه دیگه دو دود درست میکرده فرسون کمه اسپن اسپن اسپانیا، حرزن یا پشکراز چیز مختلف در حال دود کردن دود میکرد و چی می از ده طرف مثلا مریش شد یا طرف خوب شد یا طرف کده شد به نظر من این مفاعلت رو به سخه که نسبت میدادم یه مقدار زیادش بر اثر اون داره جهل انسانه جهل در موضوع آخر. یعنی اون روابط دقیق واقعی رو کشف نکرده چون گاهی ممکنه واقعا یک رابطه ای باشه که ما مثلا شوان بگیم شهره. از کردن خدا پسکت شازیه های چیزی بود از دخل ایرام خودشن بگویم تا سالها سال ها ایران آلمان شنجدی ایرام هست اون یه من بود که گوه هم تو صحرا یک علفی رو بیکنم پشت کنان تو خوب میشه و از ما آید نظر شاشم رفت می من نفس و خوب کار نباش، من ساعت فلان به اسم تو تو صحرای علفی می بعد من یادم میاد به پدرخانم گفت گفتید که بغاوه شاوردی بزرگه بودم بله اینا من دیده بودم. خب این واقعیت یه ای, ای داشته باشه یه برماها خفیه. خب خودشون خودش مکرم خوب یه رو من یه جنگ جنگی شد. کجا حالا یه حال این که یک رابطه ای باشه در یکی از امور که خیلی به نظر ما میاد عجیبه خب ممکن از این تفسیر لسره بکنیم در این که در عالم طبیعت روابط عجیب شواهد عجیب همین اخیرا خب ایده چیز اصطلاح ربی است از تلفاطی و روابط از اینها ذاتی که انسان یک ندای درونی رو یک صدای درونی گاهی میشن یه دفعه ناگهانی مثلا درس اون آشناس او دوستش، فامیلش آشناست. برسیدان بیان برنامه‌ای درست بشه. یه اموری هست در زندگی انسان که ما شاید نتونیم ابتدا یک تفسیر درستی به اونهای ارائه بدیم. اما اینا سحر نیست. واقعاً 20 سالی زمانی که واقعی این که مثل جوهری که واقعا مرده مولایی تفسیر کرده سحر ما خفیه معجزات و دقت معمنشاه هم که این درستش همینه. یعنی به عبارت دیگر اون چه که ما به عنوان سه میبینیم عوامل مختلفیه این برای ماها ممکنه واقعا بر اثر مجهولاتی که ما داریم پنهان باشه یا نسبت بدیم به امور عجیب غریب در صورت دیگه اما واقعی باشه پس کن که مثلا نسبت میدن برای این که مثلا به از دعاها و تلسمات یه تلسمی بخونی دعا رو میخونن اثری میشه خب من مخاطر روز بیارم که درست دولانی میشه ولی که نموناها رو بگیری در اصل احتمالا یک نوع روابطی باشه فرص مثلا یه چقدر روز باید فلانک ها رو بکنی. این ممکن در انسان اون جور غذای معیر و اونجور سلوک معیر یک خسارس در انسان ایجاد کنه، فرص مثلا همین موبایل که آنتن دورشه این خب فلزه خدا مثلا موبایل فلزه با که بید یک شکل محرین یا آمادش که میتونه کنند امواج رو بگیره. این ممکنه بدن انسان این قابلیت داره با اولون گفت که روح ای دوست شکرد بکنه یا آنکه شکرد حالا ممکنه انسانی که مثلا از آهن می کنه آنتن بسازه در خود وجود انسان یک آنتن اینطوری باشه این خود رو نداره وقتی اگر در من بکنید درم من مثلا خواستم بیارم که مطلب برسان راجع به تلسکوپ، در این دوره تاثیر توعوده و مناسباتی اومده. شما فلان کار بکنه، فلان چیز بکنه، در روز معین مقابل زحل، زحل در یک نقطه معین قرار میگیره فلان کار دقت بکنه، ممکنه تمام این عوامل یه عوامل طبیعی باشه که ما عادتاً خبر نداریم. مثل دیگه که اینترنت هم یه به شکلی معین درست میکنیم، آنتن درست میکنیم، می‌گیم پشت با، امواج رو میگیره، عکس میگیره، تلفات میگیره می‌گیره، دیگه خوب. این همون آنتنی که پشت رو ما علتش که این جاشو نمیگیره اینی که اینها آمدن میگن شما مثلا چه روز شما کار انجام بدید شاید این یک عاملی باشه مثل همون آهنی رو که چیز میکنه یا عاملی باشه که فقط یک مقدار مواد معینی در بدن هستن که این قابلیتی این جهاز رو نداره این مواد معین که مثلا اسواذی که خیلی دور دسته زرد میکنه مثلا حیوانی نخورد چی نخورد چی نکنه و بعد در یک شکل معینی در یک فضای معینی با یک چیزهای معینی که دود بشه این مامیم اسمی رو سر یا تلسیمات یا از قبیله می این می‌گن. درسته که آنکه تمامین امور واقعی باشه اینکه آموزه تلسیمات باشه. ما خبر الان که های علمی که آمده در آن نشون می‌دهیم یه اتفاقی کمتر بود الان نگفتن نداره که این دیگه بزرگ بزرگ خب همین آیه مبارکی که انا آتی که بیگه قبل در نیفت دلیهی که ترخب قبل از این چشم هم بزنی اون تخت بلغیس و ارچه بلغیس رو از یمن تا فلسطین چیزی در اونجا دو هزار کلوم بیشتر باشه به نظرم اینه مثلا در یک طرفت حاله این میاریم و در روایات ما دروایات باب درواب اسم اعظمه این فرمانی که اسم اعظم هفتاد و سه حرفایی در یک روایاتش که اونی که عاصفه برخیاطون از این کار بکنه سه حرف بشه دقیقاً اینا رمزه رمزه قدرت علمی است این سه نیست این سه حرف بشه اما در قیلش داره که در آخر زمان در زمان احتراق‌ها 25 حرفش داره مردم باز میشه یعنی قدرتی در حوزه 8 برابر این قدرتی که عاصفه برخیاط میخواست داشت خیلی عجیبه این کاری رو که ایشون تخت بلقیس رو از فاصله 2000 کیلومتری در یک چشم هم زدن دقیق در یک چشم هم زدن یعنی وقتی این سه هم در آخر زمان در اون را که بیست و برای مردم منکشف میشه اینا رو نباید در حساب سه رو بود نظام به نظر من منشعه این که ما آمادیم گفتیم مثلا قصه خوندیم از پسر عمر که اساساً نخیلتش که سود در یک کار میکرد بیز نمی شد یا نه از انگوش دیگهش در چشم بندی که مثلا این دیل هم آسان یعنی مثلا چه بندی این پسر عمر گفت این سره من اگه تو حضرتم نشم تو رو یعنی ماها یک مشکلی داریم که الان محض خود رو معیار تمام وجود قرار میدیم چیزی نخرمیدیم جهش بده شدیم یادتون یعنی این دنیا چیه این تورمی این مطلب این تقییه از مسایبی که گفته شده و هنوزم عوام همینطورن یک آقای مثلا یک کار ذکنه آسه بشید این یه چیز متعارفی شده از کردیم مسئله یک چشم خودش واقعیت داره اینکه از چشم انسان شعاهای خارج میشه تو بحث این متعارضه شده این که فرصیم مثلا یکی از نشره از اصطلاح عرب نشره نشره با نون و شین و ها نشره از نشر انتشار این اصطلاحاً مجموعه کارهایی بوده که سعی میکردن سهرو رو دور بکنن کشم رو دور بکنن خب یه مقدارش اینا مسائل طبیعیه من خوندم در جاهلیتی دیگه از نواشرهای جاهلیت این گوشه که این ایام بحار برن سهرا هرچی گل هر و سهرا بچینن توی باهم برن هرچی گل هسته این بجوشونه آب رو خودشون بریدن خب یه یعنی اندازت بری همینطوره واقعاً مفیله احتمالاً بعضی از افراد در اثر مثلا مثل دیر رفتن همم و ها و میکروب هایی که در بدنشون بود در معرض ادهی از امراض بودن آفات بودن چشم چشم خب با استعمال این آب واقعا بدن کاف میشه راست هم هم درست هم افونت های بدن افونت پوستی افونت های جلدی رو کلا از به چون پوستی جایی که مخیه که با قادم روزیان محشه با ویروس و اینا بیشتر میشه م... میکرو به اینها محشه امراض است ایجاد زهر و گوش های زهر این همچنین ای رو خودش انسان بریزده خب بلا کار از سلامتی قدر میشه افونت ها رو از بین میبره و خاینه های از امراض میبینیم اون تعریف جوهری به نظر من دریدترین و از درید جوهری مرزای جوهری یعنی که عواقب اون عقلش که می خراب شده عطای ایشون از کسالت که قوال می‌خاست بکنه ایشون مرتکب میتوه عواقب قرن 400 300 نمون شده حالا قبلش ها بعدش افات جوهری ایشون با دو تا چوب سر شوباش زو باز مثل باز بالای مچ جامو پرواز کرد فقط مرد میش از جامو مخوس دراز حاضر نه فوق العاده است که حتی غیر به انصافان شاهنشاهی نکات لغوی لطیفی داره ح واقع شخصیت همینه خواستیه انصافا از کسان ازمال فاریا که شخصیت میشان درست شناسایی نشده جوهری شب از گرید نظرم جوهریه ما خفیه محسزم ذهنم هم شد صحابه جوهریه مگه اشتباه که این به نظر من میاد که ما صحیح نیست راجع به مسائل موضوعات خارجی حالت دست بسته و حالت جهل خودمون رو حاکم بکنیم بلکه اینها رو میشه با نقاط علمی و پیدا کرد قطعا تقاریقی موجود بوده همین تلسمات رو که نگاه میکنه و خصوصی ها چند روز اینجوری بکن بعد اونطوری بکن بعد اینطور بشین بعد اینطور انجام بده اینا ممکنه تمام یه نقاط خفی بوده حتی از کن به اینها رو به اقسم این میگنامه این چیزی بنامه و به دانیال پیمنبر نصفت میدم این که واقعا مثلا نقطه و خط دو نقطه ب... یعنی یک نقطه به خط اینها داره یه و رموز و راهی باشه به بعضی از امور باطنی خب این شده عجوه غریبیه اما خب شواهد فرابان یا خود من دیگران در مورد رمد بوده چون رمد اون باطن نقطه و خط دیگه این رو پیدا کردن خب واقعا چیزهای عجیبی داره تو شواهد که واقعا غیر از واه غیر طبیعی تفسیری نداره. درسته به میاد اینها روابط بوده که از خبرم حتی بعضی هم به هم بیا نسبت دادن که بیا کاشف این روابط بودن. یه رساله از امام الهی‌رججه که مضمون مجلسی در کتاب بهارورد مربوط به امام صادق مفضل‌النما، مدعای اون کتاب این است. اون رساله از اول الهی‌رججشون میشه که این علمه و حواسته با انبیاء بوده، انبیاء آن اندازه و از همین در قدیم در مثلا دو سال قبل این که پیلی دیده میگه ایشون اصلا در بینه اینقدر شهرد داره, داره که معروف بوده که زنده رو زنده میکرده باته اینقدر مقدر بوده خب حالا در دو سال قبل اینطور میگفتن بعد یاواشاشش آنها به خواسته اشاره رسیدن به مرگ رسیدن ممکن است مرگش مرجش این رو سکته خلبی باشه خون در بدنش داره بوده اتفاقی روی این تو سکته کردن چند تا هنگام زن زنده چون اون چی بیشتری استادی مسلم میگه خلبی شانه شوافی بعد این یک نقطه علمی داره اینا خیال میکنم مثلا این با سری یا با ترسوادی رو زنده کرد اینا یک علمی داره در گذشته زمان دیگه کسی نمیاد کنه حرفایی به که قدیمی ها میگفتن این مسئله مثلا هست موسا الان نقطه علمی داره درست هم هست فقط این که شکل مار درست کردن در الان نداره. دیگه لذا به ذهن ما میاد آم مجموعه اموری که به عنوان سر حالا با عرض عریض گفتم خیلی اختلاف داره گفته شده ظاهرش اینه که باید یکی یکی حساب بشه فقط همین قصه مار اگر شما برای شروطی جلو رفاقات این کار رو بکنید که این بار راه این حرام نیست اون قسمت و حرمتش مدعی پیغمبری یا در مقابل گرفتن بود الله مثلا سحره آمد به موسا حالا از که موسا شما صاحب بودید ایمان شما هم قبولیدیم شما, شما این نیست مج... مجموعه آیات و آیات و شواهد فتی دلالت برشه این مطلبی نمی کنه و اولا یک طرف قصه اینه یک طرف شنید خب مجموعی اموری هست فرصم تلسماتی هست که کتاب میکنم به روح مثلا زهر رو به روح نیدارم مرگی خب قرآن تصام خود هم روز بیارم بخونیم مثلا توی این کتاب تذکرات قابل البا داود انتاکی مدرد از تلسمات هم عورده در وقت که خب داود مرد ملایی زن صحبا تو دن در جسته های دنیای طبق قدیم کورم بوده خیلی عجیبه و اینکه کوره خیلی فوق این کتابش خو... کتابهاش نه کتابش. مثلا این تذکرهش من رو به تذکره داوود یکی از مساده بسیار بسیار مهمه طبق قدیم یه دخشش در تلسمات اده از این تلسمات رو دو شرایطش خیلی چند صفحه مفصل و شرایطی رو و خیلی. خب این البته این شبه ایجاد میکنه یعنی مثلا خود من که دیروز میخوندم آیا واقعا به این مهلا و موبگاته جزو کبائره علا آیا اون مقداری که قدر مسلمه تا اونجایی که مستضب نفی عقاید ما بشه مثلا مثلا بگه خود این ستاره خالق قاضر افعال الهی رو به اون نسبت به افعال رو به نسبت بده و این صحت و مرض و تمام این جهات رو به اون سپاردان نسبت بده انصافا این رو نمیشه اثبات کرد قابلیت اثبات نداره احتمالا اون قسمه از صحر هم به اصطلاحی یا حالا اگر کف نباشه جزو موبه اما بقیه اقسام صحر باز حساب بشه بلکه یکی از اقسام صحر که در عبارت چیز خوندیم شعبده، در عربی شعبده یا, یا شعبزه یا شعبزه میگن ما چشمندی نمیگه مرحوم شیخ حس به حرف شین بعد از این اونو آورده دیگه اونو متعرض نمیشه اونو جزاکان آورده شعبده چشمندی چیزی نداره یک انویز که مثلا با تردستی مثلا یه پولی که دستشونه شد شد مثلا جی بشه. این چیزی نیست نه هیچ اونوا در تردستی و به حساب فارسی ششمندی میگه. غیر از این نداره احتیاج نداره. فی در جهت نداره که مستذ مستذیم فسخ بشه چه فرشته مستذیم خوف و اینهاش حالا اینکه به ماکان اینها عوامل متعدد دارن هم یک نباخ نیستن و اون چه که ما می توانیم در این جهت بگیم اون هایی که بر میگرده یک خود اعتقاد به اونها به انکار خالق به انکار صفات الهی دو اگر برگرده به اموری که خلاف شریعت مثلا دیگه شروق بخوره یا نجاست برسه جلو عبدالله نجاست اینها هم جایز نیست اما کفر روشن نیست سه اگر اعمالی رو انجام بخواد بده مثلا سجده بکنه برای خورشید مثلا اعمالی رو انجام در راه مقدس بده برای رسل باشه مثلا شب در مقابل خشیت سجده بکنه یک اعمالی رو انجام بده که برای به چهره و خود اون سر مثلا فرض کن آبرو داره ببره این چه چیزی مهمی نماشه. اما مقدماتش مستزدم اعمال محرمه باشه کفر باشه اونها هم چون اکثر این چه یه عذ عریضه خیلی عریض عریض تازه میگم میتونم تعبوز میکنم 4 اگر مستزدم تسرب به در انوار مردون باشه سر شهر نباشه اینکه سیو مال قم بلد یار اینکه دی جنتی افکت رو می دوست دکتور نری اصلا یک داره واسه اش کم میشه خسارتش دکتر یکی اینا اسمش جنب. مهمید اسمیش چی باشه این تصرف تو اموال مردمه و قطعه هم جاییز نیست مخاطب با اموان از صرف باشه حکمش حکم همون دزدی و همون سرغت رو نمزه پنج یکی مقدار از صرف تصرف در بدن مردمه حالا به انمال مختلف به دعا خوندن به نه دعای شرعی همین این که تلسماتی گفته شده و تصرف در برای برای مثلا زاده نیست میخوان ظالم از باید دکیه در رواییات دارید که این محلیه مستوی همینجوره اون اشکال نداره اما تصرف در چیزی که شخص به اصطلاح محدور دم و مباخده دم نیست تصرف در نفس او در عقل او او رو دیوانه بکنه بلکه بعید نیست همین مقدار که در در شوهر بکنه به این مثلا به اون زن اگر علاقه نشروشه اون هم تصرف جاییز نیست اینا، این اینکه پا برواید زیادی هم داره تو رواید ما داره که پیغمبر بروندان که در بها و الانها و مالکه منتوب این هم درست نیست این هم برواید فکرونی بود این هم قابل اعتماد نیست لیکن این هم درست نیست و اگر اغلایی به شوهرش شوهر علاقه یه زن به شوهرش شوهر اما نباید تسر روز طرف بشه حال از دست کن یعنی برش نده بشه با اجازه تو مشکل نه با اجازه قرطه این خب مثل که دوایی بخواد بخوره بخوره یا چیزی بخوره مثل پس اون بده بکر به شوهر مثل یه یه سه روز میشه بله خب چون راضی نیستنم بسیاری به ایجاز داری حقیقتا در بدن من مستنم مثل از ازام فهم بکنم بله یک چیزی که هست تصرف در جندش که جندی رو تثیر بکنه و خلاف اراده اون انصاف رسته اون هم مشکل چون از مجموعه آیات قرآنی در میان که جن نسبتش به تحریف مثل این زیاد زیاده آیاتی ها من واضح آیاتش باعفدی در این جهت نمی کنه ایزا نسبت به انس مثل ایزا نسبت به جن حالا بله موافقم شما اختیار با خودش. به حال انصافش اینه که اون هم خود دیه موارد خویشون که شما قبونه همونجا هم گفتی همونجا هم گفتین این چیز رو قبول نزدید عدالت انصاف دادن میشد دو مافیش می‌شد من شما گفتی که هر قبول ندید انصافش حالا یه طول میگیشیم باید باز آقای جن نبکن باید یه محاوله چه بود انصافش از مجموعه آقای جن این رو انسان به خوبی استظهار میکنه که مثل انس در اینجه هست و ایزا و قسم روح در اونها بدون اجازه ای اونها هم جایز نیست البته با تمام این حرفا ازده از مسادی رو هم میمونه این ازده اول است که اردواز رو شیاسی باشه ارتباط با شیاطین هم که قطعاً درست نیست اون جمعی اشکالش مگر این کار مثلا شیاطین که آیه در سلیمان داره که فقط برایشون بنا می یا ساختوان ها بود اون بحث دیگه ارتباط با شیاطین به این معنی که شرارت های اونا انجام بده اون هم که جایز نیست با ملائک هم ارتباط داشتن اون همچون ملائکه کار خیلی و ایزا 4000 ملکه به زیاد به کمک 4000 که بعد از زدیدن. اینها در دور حرم حضرت سرور زیارت هستن خصوصا استانه به این ملکه ها بکنه اشکال خاصی به حرم دشین علای چون ثرق ارز عریضی داره باید موردی حساب کرد با تمام این حرف ها اذه از مواردش مشخص میشه انصافا اذه از مواردش و چون ما یه اطلاقاتی داریم روایت از رو و کلکافه رو طول صند روشنی نداشت ملعونه از صاحر و بد نبود اجماله و اون روایت کبیره احتیاط قطعا اینه که تا وچه شرعیش کاملا روشن نشه وارد این بحث نشه یعنی وارد کارهایی که اسمش سهره مگر این که واضح باشه که که شرعی نداره اشکال نداره مثل همین فراسیون چیزایی که میگفتن فراسیون هر چه برقیس رو ع راسه خاطر اون خاطرستون در مثلا در زهد به قول معروف در طالقان داری میگونه که مثلا اعرها جمع بشن مثلا میگن با این دعان البته با یه سری ده اعر جمع بشه باران ببار اینا تو هم مشکل خاصی نداره اگر البته از کنم در روایات عامه هم داریم روایات ها گفتن که لازم اونجا آمده بود که ما ما بروس رضایت اینکه تصاحب در ملکش خودش شرازی بود چه. خود بلبیس اونجا بود. شده. خود بلبیس آمده بود. خود گرزکی میشه حضرت بود تختش آورده. ما همش. تصاحب اینه که راضی بوده دیگه که یعنی بدون اجازه اون که نبوده. فقط احزار تختش بوده. اصلا خدمتون با سوالتون اینه که انصافش اینه که چون اخلاقی ما داریم جاهایی که واضح نیست یک و همطور که در روایات آمه هم داره روایت ما هم داره ادهی از تلسمات حتی میگن همین کتاب داوود داره ادهی از تلسماتی که اینا زید شده مثلا اون کتاب در ارواح ملائک ستارگان و تواکبینات با بطلان نظریش ادهی از عباراتشون عباراتی یعنی هست که مفهوم نیست به چه زبان نیست. اونم داره پیغمبر نه که این جور دعاهارو نخونه اینم وا الان در مجموعه حتی منصوب به معنی المومنین هست باز چیزی در کتاب موحد دعوات و غیره انصافا چیزی که مگه سند روشی داشته نوشته و الا اگر مبهم باشه مخصوصا این مبهم ها و الفاظ مبهم الفاظی که الان ما اش اینها اینا رو نخونوشون اون موقع خودش انقدر کفر خودش خبر نداشته باشه این قسم هم تو رواست آمنا آمده به نظرم تو رواست خود ما هم بود اللایه تکردم به که که لایعرف معناها هست در مجموعه تلسمات و اصطلاحا که اون زمان انجام میدادن این مجموعه هست این خلاصه که به ذهب میاده باست اللهم بودنش نیست که لفت دیگه شعوزه رو مسح چون خب شد بقیه